نیایش آتش نمه سته آترش مزداو اهوره حوزاو مزیشته یزت اشناوت را مزداو اشم بهو و مستی وشتاو استی اوشتا احماییت اشایی و هشتاییشم فروران مزده یسنو زرطوشتریش ویده و اهوره تکه شد آترش پوتره اهوره مزده شناتره یسناییچه وحماییچه شنات را ایچه فرس یا یعیچه عشم و هو و هیشتم هستی حوشتا هستی حوشتا احمایی یت اشایی و هیشتایی عشم پیش پیشاز خوردن عشم و هو و هیشتم هستی حوشتا هستی حوشتا یه تشایی و اشم ایتا آت یزمیده ایده مزدام یه گام چا اشم چا داد اپست چا داد ورس چا ونگویش راو چاز چا داد بومیم چا ویس پاچا وح، آشم و هیشم ماستی، استی، اوسط حمایی هیات و هیشایی نیایش چهار سو گیتی عشم وو و استی، اوسط استی، اوسط و نمو آونگ هام اسنگ هام چه شویتر نام چه یا او یا اویی تی نام چه میثا نام چه اول خوارن نام چه اپام چه زمام چه اور نام چه انگ هاوس چه زم و اونگ هچه اشن و واته چه اشعون و سترام مانگ و هو هورو انغر نام چه رعو چنگ هام خوزات نام ویس په نام چه سپنته معین یه اوش دامنام، عشونام، عشونی نام چه عشهه رتوام عشم وو و هشتم هستی استی هستی هوش احمایی یت اشایی و اشم خورشید نیایش، شم و وحشتم و استی خوشتا استی خوشتا احمایی، حیات اشعای وحشتایشم. مسو و پیروزگر باد، مینوی خوشید امرگ رایومند را یومند خرومند اسب. نمو اهورایی مزدایی نمو اهورایی مزدایی نمو اهورایی مزدایی نمو هواره شائتائی و اوروت نمو هواره شائتائی و اوروت نمو هواره شائتائی و اشم و هو و هشتم استی خوشتا استی خوشتا احمایی یدشای و هشتا ایشم ماح نیایش اشم و هو و هشتم استی خوشتا استی خوشتا احمایی یدشای و مس و هو پیروز گرباد مینوی رحمن و ماهو. اوشو رام نمو اهورایی مزدائی نمو اهورایی مزدائی نمو اهورایی مزدائی نمو امشا ای بیو سپنتهی بیو نمو مانگ های گو چیترای نمو پیتی دیتای نمو پیتی دیتی نمو امشای بیو سپنتاهی بیو نمو ماون های گاو نمو پیتی دیتائی نمو پیتی دیتی نمو امشای بیو سپنتاهی بیو نمو ماون گاو چترائی نمو پیتی نمو پیتی دیتی اشم و هو و هشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی یادشای و هشتایی اشم نیایش آب و گیاهن اشم و هو و استی اوشتا استی اوشتا احمایی یادشایی و هشتایی اشم وهمم چه اعو جست چه زبره چه آفری نامی ویسپ نام چه اپام ونگوهی نام مزدزات نام ویسپ نام چه نام ونگوهی نام مزدزات نام عشم اوشتاو از دی اوشتا احمایی یا دشایی ویشتاییشم نیایش زندگی اشم بهو ویشتاو هستی اوشتاو هستی اوشتا احمایی یا دشایی ویشتاییشم نمو اهورایی مزدایی نمو اهورایی مزدایی نمو اهورایی مزدایی نمو ورخشا اتایی اوروت اسپایی نمو آبیو دویت رابیو یا اهوره مزداو نمو گیه نمو زرطوشت ره سپیتا مه اشعانو فره وشه نمم بیس پیا اشعانو ستویش بوان یی بوش یه این تیایی ای چه اشعانو هو و استی بوشتا استی وشتا مائی یادشائی و اشم